و نور رو کن متعلق و زیار کن مشرق اقیانوسی از حکمت مهدوی در این دو عباقت است. امام زمان نوبه ولی نوب خدا نور اضافه شده به املا مهم در طرف اضافه است خود نور هم مهمه و جهتی داره ولی قوغای بحث اینه که ولی اصف نور الله نور رو کل متعلق نور بلی نور خدا مضاف از مضافون اله کسب حیثیت میکنه تمام نشد این بیان حجت خداست این بیان فلان علامه و فلان آیت الله و فلان شیخ و فلان آخوند نیست بیان حجت الله هلکمراز نور رو اضافه میکنه به خدا و ما قدر الله حق قدره بعد صفت میاره براش بعد از اضافه متصف میکنه به صفت تعلق اما نور یعنی چه؟ نور چیه؟ اعظمال کلمات وجود نوره املاه و نور و سماوات و از در تعریف نور تحقق وجود درش نرفته است ام نور ظاهرون به ذات و مزهرون لماییات این خصیصه نور ظهور هر چیزی به نور آیم شما که الان دارید بندر رو می بینید من شما رو می بینم این ظهور بر یک دیگر به وساطت نوره اگر نور نباشه همه ما نشستیم اینجا تاریخی محضه نه شما بندر رو درک میکنیم نه من شما این نور حسی نور باطنی هم اونچه اون که بنده میگن اون که شما میشنید با برکت نوره نور باطنی لولن نور ما اگر نور نباشه هیچ شیئی به شیقیتش درک نمیشه هیچ شیعی. این نور که مبدا ادراک اشیاء است خیلی تعبیر بلنده لولا نور ما ادراک شیء اعظم و وجود ذات حق است به خودشان به نور درکی میشه برای ما حالا این نور اضافه میشه به خدا هرچه که در خدا هست در این نور هست اونجا به ذات اونجا به تبار ولی با چه صفتی؟ صفت تعلق تعلق رو اهل لغت این گونه معنا کردن یک خصوصیتی است در اشیاء که وقتی نور با اون میخوره، مبدأ ظهور میشه خیلی تعبیر عجیبه تعلق اون خاصیتی است که در همه اشیاء مبدأ ظهور مبدأ ظهور و بروز نور در اشیا رو میگن تعلیم در کمون ذات همه شما و همه اشیا یک حقیقتی هست که باید نور با اون بخوره اگر نور با اون خورد اون استعداد شکوفا میشه. غوا به فعریت میرسه و زیار و مشق و تویی ضیاء خدا که همه چیز رو روشن می‌کنی. ضیاء اون اجزای روشناکننده‌ای رو میگن که در فضا پخش میشه و موجب روشنائیه. مهم اینه که نور و زیاء در کجا استعمال میشه. سوره مبارکه یونس آیه 5. هو الذی جعل الشمس ضیاءا و نور خرشید خورشید قمر نوره پس نور و کل متعلق اشاره به مقام غمریت امام زمان داره و زیا و اشاره به مقام شمسیت امام زمان داره تو کیستی این مولود نیمه شهران که هم وجودت خورشید هم قمره هر دو در وجود تو جمعه هر کدوم به اعتبار شمس اصل ظهور قمر شام قیبت هر دود اینجا جمعه اینه که بزرگان به انسان کامل میگن کام جامع اهدیت جمعی و جمعیت اهدی این اصطلاحات خشکشون اینجا تازه مور میگیره تازه روح میگیره اون اهدیت جمعی و جمعیت اهدی اون مقام جمع جمعی، اون وحدت نورانی و نورانیت وحدانی اینجاست یک وجودی که هم خرشیده هم غمر این چه جوهری است این چه ذات بسیطیه که هر دوم در خودش جمع کرده سوره قیامت رو بخونید و جمع از و و قعر از وصف قیامت قیامت اون روزیه که خورشید و ما در هم جمع میشن حالا این قیامت کجاست ای وجودی که وجود در صحنه قیامت ولی است امام زمان مهبر آسیای بود تو کسی هستی وجودی هستی که وجود در صحنه قیامت خرشید و قمر در تو یک جا جمعند تو خودت قیامتی قیامت قامت و قامت قیامت قیامت کرده ای, ای قد قامت ما از ببیند قامتت را به قد قامت بمامد تا قیامت و جمع از شمس و قمر، شمس و قمر یک جا جمعه قیامت رو اونجا ببینید قیامت وجود خود امام زمان سلام الله علیه هر در رو جمع کرده یعنی چی؟ یعنی یک وجودی که هر گونه حدودات و تکسرات و اعتبارات رو اضاله کرده همه جمع شده حدی دیگه نداره چرا؟ چون او دائمون حضور ذات حق است کسی که دائمون حضور ذات حق شده حدودات و تکسرات و اعتبارات همه میکنه. حد برای ماست، اعتبارات برای ماست. موتن و موقف برای از سلام الله علیه یک موتن بی حد بی اعتباره، مقام مقام بسیی مشنق ان الاطلاق جمع کرده خورشید رو و قمر رو. این چه ملکوتیه؟ مقدای نور در عالم مرج همین دو تاست. نگیر اعظم خورشید و بدر تمام قمر حالا این دو در عالم ملکوت و انفس در نفس نفیس خود و عالم امکان بر یه جمع شده چنوار شمس چنوار قمر هر دو در اون وجود جمعه و جمعه شمس و قمر